فصل ششم دروبر مسجد دهدشتی خلوت بود خانه شیخ ابوتراب یک کوچه با مسجد فاصله داشت و جلوش میدانگاهی کوچکی بود که مستراح و حوز خانه مسجد آن طرفش بود در خانه شیخ ابوتراب مانند همیشه باز بود آقا دکانش را برای ارباب روجو باز گذاشته بود محمد آمد تو حیات، و به آرامی در را از پشت سر کلون کرد اتاق مجلسی آقا تو همین حیات بیرونی بود و پشت سر آن اندرون بود حیکل دوزخی محمد تو آستانه اتاق پنجدری نمایان شد شیخ آن بالای پنجدری نشسته بود تنها بود و هنوز محررش نیامده بود او مانند یک کنه گاوی درشت رو توشک چسبیده بود. ریش سیاه مهرابی پرپشتش رو بالش نرم تهدال هنک خابیده بود. سرخ و سفید و گرد و گروله و چاق و چله و برراخ بود. دستایش هنایی بود. میز کوچک پای کتایی جلوش بود. چند جلد کتاب دوروبرش ولو بود. اتاق مجلسی دراز و پرفرش بود و در و پنجره های با شیشه های رنگارنگ داشت. شیخ محمد را که با آن لباس دید، اول نشناختش و خیال کرد مشتری تازه است. محمد زمان کوتاهی در آستانه دردرنگ کرد و به شیخ خیره شد. شیخ خاموش و مبهوت بود. محمد پاهایش از هم باز بود و تفنگش افقی تو بغلش خوابیده بود. بعد راه افتاد و رفت جلوی میز شیخ ایستاد با پای باز و به حالت دستفنگ ایستاد شیخ از پیش آمدن اندام درشت محمد خواست نیمخیز شود ولی بی اراده سر جایش افتاد محمد را شناخته بود تو کمرش لخ شد و تو خودش رو تشک شاشید از اسرائیل خیلی چیزها خوانده خانده بود اما هیچگاه او را به شکل و شمایل محمد پیش خود مجسم نکرده بود و حالا اندام گنده محمد رو دلش افتاده بود و زیر سنگینی آن نفسش بریده بود خواست فریاد بزند صدا تو گلویش کنجوله شد و مرد آقا اینجا که تو نشستی جای کیه؟ محمد به او خیره شد و خیلی آرام گفت شیخ تتپتهی کرد و حرفی از دهانش بیرون نیامد گفتم تو جانشین کی هستی؟ باز محمد پرسید و تفنگ تو دستش بول خورد. دل شیخ به آشوب افتاد و خواست بالا بیاورد. دلش داشت از سینهش بیرون می پرید. دست و پایش و زبانش به اختیارش نبود. تنش یخ کرده بود. زبانش فلج شده بود. اگر جواب ندی سرخت می باز محمد با سماجت گفت و نمیدانست که شیخ نمیتواند حرف بزند و میخواست صدای لرزان التماسآمیز او را بشنود شیخ میخواست چیزی بگوید اما زبانش تو دهنش نمیگشت و صدا تو گلویش گیر کرده بود مثل اینکه تو خواب بختک روش افتاده بود و هرچه میخواست داد بزند نمی توانست و توانایی هیچ کاری را نداشت و خون تو رکهایش خشک شده بود صدای حرفهای خودش تو کلش ولو شده بود و پیچ و تاب می‌خورد و چیزی به زبانش نمی‌آمد و صداها رو پرده گوشش فشار می‌آورد که بیرون بپرند و سرش منگ شده بود و محمد حرف می‌خواست و جواب می‌خواست و او حرف نداشت پس با دندانهای چفت شده گفت زبونت پیش از خودت رفت اون دنیا تو که خیلی خوب بلد بودی حرف بزنی منبر وز میکرد و مردم را از آتش جهنم میترساندی وقتی میخواستی پولای من بگیری اون همه زبون ریختی اما حالا لال شدی چرا کاغذ دروغکی برای من درست کردی و مغرد پایست خیال کردی به همین آسونی میتونی از دست من در بری شیخ به زبان خود اشاره میکرد و شکلک در میآورد. های تلخ متشنج اتاق جلوش چرخ میخورد محمد پیش چشمان او سر و تهم میشد لبهای محمد تکان می‌خورد و شیخ صدای او را نمی‌شنید صدای گلوله تو اتاق از تو بازار بلندتر بود لوله تفنگ رفته بود زیر بغل شیخ چسبان پیراهن سفید و گل گشادش و در دم تو گوشت خالی شده بود درست مثل کریم هاج محمد خوب می‌دانست اگر گلوله چسبان گوشت تن خالی بشود صدایش کم است شیخ تکان نخورد و همانجا روی تشک مچاله شد و مسند زیرش خیس خون شد و پیراهن گل و گشاد سفیدش سرخ و تر و گرم شد محمد گلنگدن زد و پوکه را پراند پر رو کف اتاق و از دل پوکه دود رقصانی بیرون جهید تند برگشت که برود بیرون اما میان اتاق چشمش به دو زن سیاه پوش بلند بالا افتاد که هر دو ناگهان شیوند کنان به او حمله کردند چهره زنان میان مغنع سیاه ابریشمی گرد و رنگ پریده و خشمگین بود محمد فقط فرصت یافت تفنگش را حمال کند زنان پیر و جوان بودند جوان سبز و یغرور بود پیر چابک و دلآور بود دوتایی او را بغل زدند و پی در پی فریاد میزدند و کمک میخواستند محمد. از این پیش آمد که منتظرش نبود خودش را باخت و کشید در برود برسین کشت کشت خاک به سرم شد. ای با ویلا شیر مرده صاحب شمشیر مرده. وی وی, وی وی وی وی وی وی محمد به تلاش افتاده بود. زن جوانی چرخی خورد و رفت پشت سر محمد و دستهای نیرومند خود را دور گردن او حلقه کرد. زن زورمند بود و محمد میدانست که زنها مثل خودش اهل دشتستان هستند همان دم خفگی دردالودی تو گلویش پیچید دست دستپاچه شده بود دستهایش را رو محکم روی کارد و تبرش گذاشته بود و میدانست اگر یکی از آنها به دست زنها بیفتد کارش زار است محمد به طرف در میرفت و زنان را با اندام گندهاش با خود رو کف اتاق میکشید و با لنگر تند و زورمند می میکوشید آنها را از خود دور کند. دستهایش آزاد نبود و رهایی دشوار زنی که پشت سرش بود به او آویزان شده بود و تمام سنگینی خود را با آرنج روی گلوی او فشار میآورد زن سنگین بود و تمام فشارش روی گلوی محمد بود پیش چشمان محمد سیاهی رفت، در این هنگام زنی که جلوش بود ناگهان نشست و گنده او را گرفت و سخت فشار داد دل محمد زعف رفت، تو شکمش پیچ افتاد، تعادل خود را از دست داد هرچه باد آباد تقصیر من نیست، این را دیگه فکرش نکرده بودم، حالا که از جونتون سیر شدین زن و مرد برای من فرق نمیکنه. تبر روی سر پیرزن پایین آمد و زن نالید و شل شد و رو زمین افتاد و فرش اتاق سرخ شد سپس با یک حرکت چالاک دست زن دیگر را که پشت سرش بود از دور گردن خود باز کرد و او را به دور خود چرخاند و پرتش کرد رو کف اتاق زن شیون از جایش پا شد و باز به محمد حمله ور شد که تیغه تبر روی قلم دستش فرود آمد و نعره تو گلویش مرد و بیهوش بر زمین افتاد از اتاق بیرون آمد بشت سرش را نگاه نکرد آمد تو حیات یک گربه گل که پایین پله ها بود از دیدن او هراسید و از دیوار راست پرید بالا رفت و رو هره نشست و دمش را دور خودش جمع کرد و محمد را تماشا کرد هنوز تبر خونین تو دستش بود و سر و صورتش عرق نشسته بود خیلی گرمش بود رفت لب حوز دستش را شست و تبر را شست و زد پر قطار فشنگش بعد چند کف آب زد به صورتش آب شور بود آمد پشت در صدای نیمهجان جان همه ای از تو کوچه به گوشش خورد در آهسته رو پاشنه چرخیده و سرکله و جانستان درشتندام تو درگاه نمودار شد گروهی پشت در جمع شده بودند. همه آنها میدانستند محمد کریم را کشته و حالا سر وقت شیخ راب رفته. ناگهان هم همه برید و سرها جنبید و گردنها کشیده شد و چشمها باز و بسته شد و عکس محمد تو چشمها افتاد. محمد جمعیت را با چشم شکافت. تکان آرامی به خود داد و آهنگ رفتن کرد. مردم راه دادند، هیچ کس حرف نمی زد. رسید جایی که صف آدم ها از دو طرف تمام میشد. شد. آن وقت برگشت به سوی جمعیت و شمرده و آرام گفت دیگه با شیخ ابوتراب حسابی نداریم، به سزاش رسید. هرکی پشت سر من گفته با خودش دشمنی کرده. و بعد راه افتاد و مردم سر جایشان خشکشان زده بود و عکس محمد تو چشم مرده بود آمد از در خانه ما گذشت و من نخستین بار و برای زمان کوتاهی او را دیدم آدم ای بود با چهره تابیده و چشمان خونبار آرام و تشویش راه می رفت. من داشتم تو کوچه خودمان با چند تا بچه دیگر تنگسیه بازی می کردم. تو سوک دیوار آب ریخته بودیم و گل سفتی درست کرده بودیم و در آن چوبهای کوتاهی که تنگسیه نام داشت فرو می کردیم. وقتی که محمد از پیش ما گذشت، تنها بود و هیچ کس پشت سرش نبود و نمیدانم چطور شد که ناگهان چشمانم تو چشمان او افتاد. من در آن دم نمیدانستم که کیست و چه کار کرده. خیلی بچه بودم، شاید شش سالم بود. آن وقتها تو بوشهر زیاد تنگسیر آمد و رفت می کرد و ما آنها را از زلفان بلند و اندام یغور و سر و وضعشان میشناختیم و با آنها صحرایی میگفتیم و از فروشندگان دورگرد آنها کنار و گزر و منگک می خریدیم. مهربان و بساز و پرحوصله بودند. او زمان کودایی در کوچه ما بود و بعد رفت تا کوچه و آنجا ناپیدا شد. بعد از آن کوچه های پیچ در پیچ با بالکن‌های چوبی بود که شیچه رنگی و کرکره داشتند و به محله های بهبهانی و شنبدی می‌خورد. بعد سیل جمعیت از طرف مسجد دهدشتی پیدا شد. همه آهسته راه می رفتند و زمزمه می کردند. من آن وقت فهمیدم که او کیست و چه کار کرده. مردم گویی از قبرستان برمیگشتند و یا دنبال جنازه‌ای راه افتاده بودند که به خاکش بسپارند. هیچ کوششی برای تند رفتن در آنها دیده نمیشد. اما در جمعیت خروشی نهانی بود و ترس سنگینی آنها را از هم جدا ساخته بود. هیچ که حریفش نمیشه، مردم میگفتند. چهار نفر رو زده، این شیخ برازجونی دو سال نیست اومده بوشه، یک کاروانسرا به اون بزرگی خریده، این پولا را از کجا آورده؟ از مردم بیچاره مثل محمد که غارتشون کرده دست مریضات خوب سزاش داد اما بد کاری کرد که خواهر و مادر شیخ را کشت خواهرش نمرده مادرش هم هنوز بیهوشه شایدم خوب بشه هرچی خدا خواسته میشه آه کسی رو زن نباید دست بلند بکنه زن ضعیفه میخواستم بگیرنش چاره نداشته تو که نون و حلوا پخش نمیکنن. اونم یه همچون جایی که پای جون تو کاره این همون زار محمد تنگسیر نبود که دم دروازه دخونه جا فروشی داشت؟ نگو زار محمد بگو شیر محمد شیر محمد راستی که شیر محمد شیر محمد شیر محمد شیر محمد شیر محمد آخرش پولاش را با گوله پس گرفت به به غیرتش میدونی که کریمه هاش همذر و همذره؟ بله من خودم اونجا بودم اصل کار کریم بود که پولاش را خورده بود چطوری بود هیچی چجوری می میخوای باشه مثل دستی گل زدش اونم سر تیر رفت مثل بره قربونی تو خون خودش افتاد این جور غیرتا فقط تو تنگ سیرا پیدا میشه اما با بوشهری ها اگه زن و بچهمون به اسیری ببرن نفسمون در نمیاد دیگه تو این شهر حالا حالا کسی پول کسی را نمیخوره دیگه کسی به کسی ظلم نمیکنه میترسم تو پنگجیای حکومتی بگیرنش ای خدا بشه در بره تونه ننشون کدومشون جرأت میکنه پاپیش بذاره به خدا اگه بیاد من میبرم تو خونه خودم پنهونش میکنم و بعد فرارش میدم منم هم همینطور همه طرفشن خدا خودش حفظش کنه دستالی و همراهش کاشکی ده تا میکشت ظلم خونه اون رو خراب کرد خدا خونه ظالم خراب کنه بله خدا اما به دست اشخاص مثل محمد بله چوب خدا صدا نداره اگرم زد دوا نداره آسید محمد علی کازرونی تو اتاق مجلسی خانهش روت و نشسته بود و با محمد گنده رجب حرف میزد سید آدم خرد لاغر و گندمگونی بود که ریش بزی و قبهای تو خالی و پوک داشت او هم حاکم شهر بود محمد گنده رجب دلال محاظر بود هر جا بوی معامله ای بلند میشد سر و کله او هم پیدا بود بیرمردی بود با ریش بلند سفید و چهره زشت و خیلی بد دهن وقتی که محمد آمد تو اتاق آنها خیلی آهسته و تو گوشی با هم حرف می زدند چشمان هر دو با هم به محمد افتاد و حرفشان تو دهنشان خشکید چهره محمد مثل گون مشتعلی میسوخت و خنده تو صورتش مچاله شده بود توفنگش تو دستش بود به رسیدن تو اتاق نزدیک مسندی که سید و محمد پهلوی هم بودند آرام و مسمم به سید گفت آقا بیزمت تو پاشو برو آن طرفتر تو من حسابم را با این نامرد صاف کنم محمد بیش حرف میزد و پوست چهرش میلرزید و نینی چشمانش می دوید سید از جایش تکان نخورد دلش می خواست پاشود اما زانوهایش میلرزید و تنش لمس شده بود باز محمد با خشم گفت آقا تو گناهی نداری مردم هم ازت تعریف می کنن ندار دست من تو خون تو بره میگم پاشو برو بگو چشم اگه پانشی خونت به گردن خودته من با تو کاری ندارم به محمد گنده رجب حالت سکته دست داده بود تنش سرد سرد شده بود و چشمانش بی حرکت به محمد افتاده بود زیرش تر شده بود فهمیده بود محمد برای کشتنش آمده او هیچ وقت تا این اندازه مرگ را به خودش نزدیک ندیده بود دلش خواست به محمد فوش بدهد اما فکهایش روی هم کلید شده بود و دندانهای مصنوعی تو دهنش میلرزید و دلش داشت می استاد. در این هفتاد سالی که ازش گذشته بود و تا اون بوشه را به چشم خود دیده بود هیچگاه مرگ را آنچنان زنده و آغوش خود ندیده بود سید رعشه گرفته بود و سرش تکان تکان می‌خورد و رو زمین خیره مانده بود و یک چیزی مثل ورد زیر لب میخواند و غلط میخواند و همه چیز از یادش رفته بود سپس ناچار با تلاش ناتوانی دستهایش را گذاشت رو زمین که ستون کند و پا شود اما زود مثل خمیر وارفت. سرش رو زمین خم شد و بعد چهار چند روز رو زمین گاگره کرد و از رو تشک دور شد محمد گنده رجب تو خونه خودش غلطید و سید زعف کرد و محمد بیرون آمد. تو حیات خانه نوکر سید محمد علیه کازرونی جلوی محمد ایستاده بود. آدمی کوتاه و قلچماق بود. او همانطور سر جایش ایستاده بود و تکان نمی‌خورد. هیکل محمد را چون بام فرود آمده ای رو خود حس کرده بود. محمد همچنان که توفنگش را همایل می کرد به او گفت آقا رو برش دار ببرش اندرون اندرون حالش جا بیار و لاشون خدا نشراس هم بنداز جلوی سگای قصابخونه کنه. نوکر می و نشنید محمد چه گفت و عق زد و چشمان خون گرفته محمد تن او را فلچ ساخته بود. از در خانه سید محمد کازرونی بیرون آمد. اینجا جمعیت از جلوی خانه شیخ خبوتراب زیادتر بود. آستانه در از کف کوچه دو پله بلندتر بود. محمد رو پله اولی ایستاد و به مردم نگاه کرد و جمعیت را دید زد. لبخند تو چهرش بازی می همان همون لبخند بویناک اما از دیدن آن همه آدم دلخور شد. با دست به جمعیت اشاره کرد که پس بروند که می خواهد رد بشود و اگر کسی دست از با خطا کند خونش فرش کوچه خواهد شد و چون با در مردم افتاد و محمد با لبخندی تو دلخالی کن گفت آقای آقا سید محمد علی اله حالش خیلی خوبه و هیچ کسالتی نداره فقط یک گرگ پیری که اسمش محمد گنده رجب بود پهلوی روی آقا نشسته بود و میخواست آقا را گمراه کنه که نزاشتم و جیگرش رو سلاخ کردم و از پله دوم پایین آمد راه باریکی میان جمعیت برایش باز شد آرام و نیرومند راه میرفت و به کوچکترین حرکت مردم توجه داشت روبرویش کوچه بود و بعد یک تاق سیاه که روز هم در آنجا شب بود و بعد چند کوچه پس کوچه که راهشان تو سرش غالب گرفته بود هنوز به آخر صف نرسیده بود که ناگهان صدایی از میان جمعیت بلند شد محمد منتظر شنیدن این صدا نبود یک نفر حرف زده بود صدا می لرزید و زیاد بلند نبود و صدا خلت گرفته و سرد بود زار محمد خدا را خوش نمیاد یه توفنگ دست گرفتی و هی خلق خدا را بیجون جون می کنی. بنداز دور و بر شیطون لعنت بفرست. محمد مانند اخکری به هوا رفت و با یک تکان تفنگش تو بقلش جا گرفت و فریاد زد و خود را به آخر صف انداخت. کی بود این حرف را زد؟ نعره محمد هوا را شکافت. ها مومین و زده و بی تکان و چسبیده به هم و لایه هم فرو رفته به هم دوخته بود. سید شال سبز زرد چهره مفلوکی که فقط سرش از تو جمعیت پیدا بود گردن کشید و گفت من بودم و سرش رو گردنش لغ می و در نوسان بود و اندامش تو جمعیت فرو و پنهان شده بود. محمد او را شناخت که سید نوچه بزاز نوکیسه همسایه کریم هاچ بود و همیشه در گفتگوهای او و کریم حاضر بود و طرف کریم را می گرفت و چند بار محمد را مسخره کرده بود و به او متلک گفته بود محمد از دیدن او قرشی کرد و گفت تو اگه سید اولاد پیغمبر بودی از این حرفانه میزدی. سید جد تو کمر زده مگه تو خودت صد دفعه با اون چشایی کورت ندیدی که کریم با من چجوری رفتار می و آخرش تو منم خورد مگه تو خودت نبودی که صد دفعه دم دکون کریم منو مسخره کردی و بالاداری کریم در می اومدی می تو هم برای ننت تو کنم؟ یه نون بخور و صد تا صدقه بده که من عهد کردم دستم رو سید بلند نکنم هر چند تو هم از جنس همون گوربه گوریا هستی حالا اگر فیداری بیا جلو تو کنم این مردونگی نیست که آدم از هیکل امشریاش برای خودش سنگر گوشتی درست کنه و پشتش کر بشه من نمیام برای خاطر تو اولاد یزید ابن ماویه چند نفر رو به خاک و خون بکشم اگه تو مردی بیا جلو تو کنم یه مندوخ چقدر کره میده سر و گردن سید میان جمعیت خوابید و یک توسری محکم از عقب تو سر سید خورد و تو جمعیت گم شد بعد محمد گفت مردم من با شما دشمنی ندارم شما مثل برادرای من هستین خیلی آتون با من رفیقین و با هم معامله داشتیم میخوام بگم کار من هنوز تمام نیست اگه بخوایین دنبال من راه بیافتین هم برای من بد میشه هم برای شما خودتون پای جون تو کاره اما اگه میون شما کسی باشه که مثل این سید جد کمر زده از درد دل من خبر داشته باشه و بازم حق به من نده بی معطلی با گلوله سرخش میکنم. بروبرگرد برگرد نداره. حالا برین دنبال کار و کاسبیتون و بذاریم منم به کارم برسم. و راه افتاد. در خانه آقا علی کچل بسته بود و محمد چند بار آن را حل داد و باز نشد. پس آرام در زد و صدای نازک زنی از تو گفت کیه؟ منم نوکر شما محمد آرام و دوستانه جواب داد و بعد سرش را برگرداند و به عقب نگاه کرد به تک تک مردمی که از دهنه کوچه ها سر بیرون کرده بودن ماهرخ رفت سرها تو کوچه پنهان شد و گذر خالی ماند آقا حال نداره و خابیده فردا بیا زن گفت با آقا عرص کنیم محمد اومده اون چلتومنی که خواستیم براتون رو بگذارش بیاد بالا صدای کلفت مردی از توخانه قاطی صدای زن شد در شد و محمد آرام آمد تو دالان و خندان به زن سلام کرد و زن در خانه را بست هوا خدا بد نده آقا علی چشونه با خوشرویی از زن پرسید کار کن خورده خدا شفاش بده گمونم سغله سرد کرده باشه و خندش را خورد و سرش را از زن برگردند یک شیردان بلور گلگون پر از آب اندوان که یک تکی یخ و شناور بود تو دست زن بود زن محمد را می شناخت و از کارش خبر داشت و دلش برای او میسوخت بسیار دیده بود چه برای گرفتن طلبش این در آن در زده بود و, عجز و لابه او را با شوهرش شنیده بود و تو دلش میدانست که محمد نمیتواند طلبش را بگیرد و میدانست که شوهرش حق او را گرفته و نمیدهد حالا که او را با این لباس دیده بود محمد به نظرش گنده و چابک و خوشحال و شست و رفته آمده بود همیشه او را در پیراهن و شلوار ساده سهرانشین دیده بود رسیدن میان حیات و دلش میخواست بیدرنگ بداند مرد خانه کجاست و پرسید خواهر آقا کجایز زن؟ زن گفت من داشتم این آب هندونه را براش میبردم بالا تو بالا خونه خوابیده، بریم تا نشونت بدم و زن از پیش و محمد از دنبال راه افتادند. زن عربی حریر سبز و خفتی اطلس آسمانی تنش بود و مچهای دستش پر از علنگوی طلا بود و یک جفت خلخال کلفت سنگین طلا رو پایش لم داده بود. محمد هیچ شتابی در راه رفتن نداشت. میخواست خستگی در کند. از پدله بالا رفتند. محمد خانه را خوب میشناخت. طبقه ای اول همان اتاق پرفرش شد و زرف و لالو و مردنگی و چلچراغی بود که مجلسی آقا علی بود و محمد از این اتاق خیلی دلخور بود در همان اتاق بود که با آقا علی پول داده بود و تو همان اتاق بود که آنقدر التماس کرده بود که طلبش را وصول کند و همیشه تو و تشر و حرف تلخ شنیده بود و تو همان اتاق بود که باز آقا علی چهل تومان دیگر از او طلب کرده بود حالا اتاق توهی و بیجان بود از کفشکن کوچک و تنگی که پلکان بالاخانه توش بود گذشتند راه پله تنگ بود آخر پلکان یک کفشکن دیگر بود که به بالاخانه میرفت. تو تاخشه این کفشکن یک کوزه سفالین سبز رنگ بود که چکاهای آب از آن ترابیده بود و یک پارچه سفالین هم پهلوی کوزه بود محمد از دیدن کوزه یادش آمد که تشنگی سوزندهی درونش را می خراشید. اما سرش را از کوزه برگرداند و آرام دنبال زن رفت تو اتاق. آقا علی یک تا پیراهن و تنبان روی یک تخت چوبی ساخت بمبایی دراز کشیده بود. با دیدن شکل و شمایل محمد باد بزن حصیری را که تو دستش بود لای کتاب مصنویی که میخواند نشان گذاشت و کتاب را بست. اصلی ششکوش کوچکی بغل تختخواب خواب بود که رویش یک کاغذ مگسگیر بود که پر از مگس های مرده و نیمه جان بود و دیگر جا نداشت که مگس روش بنشیند. مگس های بسیاری بر فرازش در پرواز بودند و میخواستند روش بنشیند. یک عرقچین عبریشم دوزی کل غندی سر بود و سرخی کچلی سرش را پوشانده بود. محمد سلام کرد و دل آغالی لق شد و پیش چشمانش هزارها مرچه بول زد شنید که محمد میگوید، آقا اون چلتومنی رو که خواسته بودی برات تو بردم آقا علی به سرفه خوش گفتاد و چهرش نیمی شد و نیمخیز شد و گفت گفتی چقدر بردی؟ و اتاق جلوی چشمانش تاریک شد و لکه های آفتاب رو دیوار پرید و شب شد و و اتاق آمد به زمین و کفان رفت تو سقف. محمد فوری جواب داد اینقدر آوردم که سیر بشی این جواب محمد بود با یک خنده دلشکاف و نگاهی بلعنده که وجود بیمار را درون خود کشیده بود زن حرکتی کرد که آب اندوانه را بدهد به شوهرش محمد با دست جلوی او را گرفت و گفت نخواهر، اگه یه سب کنی یه چیزی میخوام به آقا بدم که بعدش این اندوانه خیلی به دلش میچسبه و دردم گلوله تو دل آقا علی خالی شد و تشک تشنه هلکی خونها را بلعید و لاشه مگس های روی کاغذ مگس گیر تو خون فرو رفتند و باد بزن و مصنبی از تخت خواب به زمین افتاد و زن قش کرد و افتاد و آب اندوانه قاطی خرد شیشه ها رو کف اتاق ولو شد. محمد تند از اتاق بیرون آمد. دوباره کوزه آب رادید. آن را برداشت و به دهن گذاشت و با ولع تمامش را سر کشید و دهنش را با پشت دستش پاک کرد هنوز توفنگش تو مشتش بود از بله که پایین میآمد پوکه آن را بیرون پراند و گلنگدن زد و باز آن را همایل ساخت و در کوچه را آهسته باز کرد و آمد تو کوچه پشت در کوچه کسی نبود اما تو کمرکش کوچه و کنار دیوار گروهی ایستاده بودند شادی چهره محمد و آرامش او مردم را متعجب میساخت. همه صدای گلوله را شنیده بودند محمد مانند مردم عادی راه می‌رفت و چشمش همه جا بود صدایی بلند شد که گفت دست مریضات شیر محمد محمد هیچ نگفت و خنده‌اش پنتر شد تا زمانی که خوب از خم ای که به طرف محله کتی میرفت نگذشته بود، هیچ کس از جایش تکان نخورد. محمد راه محله کتی را پیش گرفت. از چند کوچه پیچ در پیچ گذشت و وارد میدانی شد که جلوی دکان یعقوب میمنی بود. میدان گلو گشاد و بیغواره و خاموش بود. آرام و بیشتاب از میان میدان گذشت. آفتاب پتوپهن سفید که ذراتش تو نم خیس خورده بود کف میدان موج میخورد. رسید به کوچه عکاسخانی میرزا یعقوب کوچه خلوت بود و تنگ بود و هنوز یک طرف آن را آفتاب نگرفته بود داخل کوچه کشید دو تا تو تفنگچی حکومتی جلوش سبز شدند محمد آرام و سر به زیر می و می نمایان که آنها را ندیده اما هر دو را شناخته بود که تنگ سیرند یکی از توفنگچی ها داد زد یالا خیر باشه زایر تو هم تفنگچی شدی؟ بله این کار بهتر از کاسبیه پول مفت و بیکاری محمد گفت و تو روی هر دو تفنگچی بلند خندید و دو تفنگچی قدمهایشان را سست کردند محمد رفت تو سینه آنها و ایستاد زایر از کجا میایی؟ میگن تو بازار آدم کشتن یکی از تو ها گفت و مشتی موتو که تو دستش بود ریخت و دهنش و آنها را با ولع جوید بله منم شنیدم میگفتن تو بازار دو نفر دعواشون شده و پوسه هم رو خراشیدن محمد گفت و بیشتر خندید و تمام عضلات تنش برای قاپیدن تفنگ از روی شانهاش به مورمور افتاده بود و توانایی و چابكی و زوربازوی آن دو را دید میزد دیگه نباید تیر در کنم با خودش گفت و راه داد تا تو تفنگچیها خداحافظی کردند و با شتاب به طرف میدان رفتند محمد از پشت سر آنها داد زد به بر و بچههای تفنگچی بگیم ما هم قطارشون شدیم هوامون رو داشته باشن. و ها سرشان را برگرداندند و خندیدند و محمد خندید و از خم کوچه پیچید و خم کوچه او را